تهلیبی برای زانو فرشیستان خوشحالین لبش 16 میخوانوی کتابی چشت مجوری حجاری مکوریانی هاتین ولاتن فرمون بن هجار مکریانی بردوام به لسه گرانوی به سرحات جیانی خوی لوی کاتی کل ایران و دیویست بیت عراق و بدوی گوندی انجینه دادگر را لو کاتی دا کل چو میک دپاریت و چو مکه هموی بستویتی و سردی که زور کاریتی کردون حوالکانی بانجیلیه کن اما با کالو گوریه و دپارینه تو آگریک من بو حلکه هجار دلیت هندیک وشکلو پوشم نقص نکینا و آگرم دا. قاچه نیوه سرمابردوی سیباش قلاشتو جاور جانبکا. کوتی نره لبر بفری ری بشوین بشوین برازانده دچوین. بسر کوخیگده کوتین. تنیا مالا ببند لینکوا کشکو خوشکو برای که لیده جیا. زورین بخیر هنائن. میاوزو جوزو هنجیرین دپیش کردین. کراک دیگود؟ خونم دې تبو تری اسپیل کم نه زنیم ځانیم او بفرق ورسه باره اگر د خو دا تری راشک به خوم باره همو ځانین رازک بول ابنار گوندی ورچکو له دنیا طریق بوبون بیانی او ابوینه دی وی عراق نفس کی اسودم هلکې شاو شا. خو له بر حکم عجم خلاص بم پاشنوج شیوان یک و رومان کرد گوندیک بیورا یان بیوران یان پیدا حشر وحللابو جربو شیواو ممنن قاری سرو مالا تازه بو کئپچین بزن من کِرن خسار کو چوینمز گوت مزګوت لا خلکی گوند جمیدهات ملا کیش بناوی ملا عزیز بدن جیبرز دیگو من مال خوم راګو استوا ای وش هلند هتا نه کوجراونو تالان نکراونو خانوکانتا نسوتن راوا کس هوشی اوین نابو جاب اسلام من سنیتوا مساله چیا پرسی من و چان شیخ لطیف ده گل پوجدری شرعیتی گوندی تونتمانی سوتاندوا ام گندش هر بچه غلطی ف. امشو پش دریلت ولاده دی سویانو طالع نیا کن. جارجار تروتو بکرده. دم اگر آوان بقسم لعب کن یا مصرمان بیکلاود منی. قسم لدمی ملاق خو است وتم. برا. بوش کاتی پولیس ناکن. ویان شکات من کردو. نه ویرن باشو بیانها وارمان. پیمون تن بو خو تن چک تن هیا کوتنه بچردن. بله. سیاست فیشک من هيا منی وتم. برام. کس نرو. بچندؤ اگر لدوری دی بکنو ختان لبریدانشن دست دست کشک لدے بگرنو تا سر ماتن بو ورن بر اگری مزگتو دستب گورن ہتا ہرج برنے ن بر سری تفنگ تقین لمکن امشو بو شوار صد فی شکات وان پارزن اگر تنیا تن بو ہات او من حاضرم صد بجریتن بو بکجم بو بہرا وچن ملا عزیز خویری تو کی و چیپ شو او کرجہ یلا گورمن بیو بقسی او دکن سرثنين شنم تواوی شول ناو لیفی زوری مزگوت اخوتینو کس نه هاد بوتش د ری کوشتن بانگم کا بیانی کا بر یک بر دینه مال خوی جنان شن ان مز ذکر ک اگر توی و عازاو رشید نه بای مال وینندبون بو یکم جره پلاو سوار یک من خوادت ک ته استاج لبند دانم دایا هاور چی لشکری شغلتیف گین نګوندو بجی من هشتو بو ایواره گین کناروی ک مال هر دوک شول مالی حوالکی چودارم میوان بو خسوی کی پیری زور نہ حزیه بو لی پرسم کا کاملہ راست دلن کس یک دل جیرنان به شینل قبل ادب میمون و تم نا دایا خدا دو جرکس نا کات میمون جنیکابراجی حلو جوان بو نا زنم له خوشی حتناوی مردکی بو یان کیفی به من دهت تماو دردونی کردم هرچند گشابول یفم بدو چمونز گو تل بالا به دور ب سبی او رجبتن یاملی ریم داگیر در رگا توشم بو به توشی دو پولیسی کورد عراقیا و د میست خو م وک خلک اولاد نشاندم و بن لیان پر سیم شوندری و تم خلکی کناریوم پولیس وتم ډیره خلک ایرانی برو کارمن پیټنیه بلان مل مانګونه بن سېری دلې ګشت ما قواخانی ازمد شش چم لسره خورده وکابره کی قله میوان لی پر سیم چیکاری قواچی شانګرتو فريده درې وتی حقیقت شی مشتری من د پرسی پلی ئرانیم بۆ دەرێنە پێنجقررانکی هەڵگرت لە گۆژە سەرکەوتم توشی کاروانێک بوون دەچوونە سلەیمانی لە نیو قساندا تاریفی ئەسپەڕەشی شەخڵەتیف بوو کە زۆریان مبالالەغەت ساده دەکرد پیاوی سادە و دەشتی دەسادداران زۆر لەوە زیاتر دەبین کە هەن تەنانەت باز گەیشتە ئەوە کە تاژیەکانی شغلەتیف نیوەڕۆژ و شێوان هەرپلااو گۆشتتە تەنانەت باز گەیشتتە ئەوە کە تاژیەکانی شەغلەتیف نیوەڕۆژ و شیوییان هەرپلااو گۆشتە. هندګ ده انګو بریا ته شيخ بوینا یوار درنګی منو شر لدل ده بریا رم دابو بڅمه حجر مزګوتی ګورو بمه وفقه بلام دمزانی لوي استراحت ناکم زور ماندوب نو روز بو ابو همو دردو بريوبو مو لا حبسي شو هلاتبو با ام شو بڅمه مسافرخانه خانه لکابراکم پرسي مسافر خانه لچیا بانجی کړم لاو ګوتی بلې هوټل مسافر خانه قا چاغ بردم یو бир ما و تاغی دو تختی کسی تریش نبو، بو بو و تم اگر و چان اگر خود خلوص بکری بود دغه شینی نه و به خلوص خو گرم کده و شو میوان کی تر بو تختی دو هم حد لا وی چی جوان چا کی 16 او 17 ساله لا وی جوان چا کی 16 او 17 ساله به تفنگ او فیشک ملام حلی پچام نوشته ب بنوسم کی جک حزیلبکا تم ګرند کمن لو ملایانن شو من یک ایرانیم داره بخوان هتل چوار پنجای دامی و چو مقه و خانه هر پنجای کنم حال یارو ورگیر دکرد و دم خون نوزورم پسربو نشون دزانی بر امبار بچن پولی ایرانه خیالات بردبو میوه حیران لبوکان بیست من کشای پنجون به بوملرزه ورند بود کابراهیش شاعری پنجونی بنای مفتی کجای لبوکان لکاتی نخوشیم دسری دا دوم تا بلای لیر نبی دیسات شون بیار مله خیب برسم دو کس لنزیک من تختیان دکل بنازه که ولی کانم پرسی تو مفتي تو تنشیدناسي گوتي نه نه ناسم. آويتر گوتي کره و کابلاي لجادي تازه دوكانهي با چيه منشوتم با هيه هر پرسيم دل نخن كه او پلاماري پوشش داد من كاواري كم لمشارده كس ناسم اما شربعش ديدوز موا شو هوا لكي هوا تاگم گوتي سبع ساعت پنج دسما حمام تنعي منشوتم ای د خیلت بم بجمه یلا بیانی هر تاریکن بو چوینه حمام لا وک دی آغام کور اغام له بازیان وتی ملاوره پشتم شو وتم توش پشت یمن ده شو وتی نه چحدت هه وتم من رایتی بازیانم هل کس کور بابی خوئ بس کا اغا دیر بدلی یشابو برله من له حمام درچوبو تا وه نه هات بو له حمام درچوم نسر دوکان یکم خوین دوا گلاویش لچا خانمه ما و تا دوکان کرا نه و چوم گلاویش دکانی مفتي تو تنشيل شويا كبرا به ترس كه ودستي بدامي آگر يعني دنگ مكه تا اوترسم مشتريك ليو بود درچو خان دكاني وره زور لدور ودتي اوج جديد تعزيه كردي و چوم توشي مفتي بوم كنايش كواليم ملا كريم بو لسر دكاني كيوتا دانشته بو هر سلام كرد بگرمي بهخيرات نيكردم دستي پيكر دايچوني چكيش كر معلوم نداشوند وتم همون لياقت با كيفن ودتي فروختت شکر خیرت کرد دهی سرچاو هم هاتی، زوری رست، وتم تم وادیار اوکلشه دکانداره بو همو مشتریه کی دلین. ده نامناسی نام ناسی، گوتي راز دکی، د تو چی؟ و تم من هجارم، دستیکر ده گریانو فرمیسکی ده بارین، بریه شویر بامونم دیبا شورش تک چوا. منیش و تم، ام گریانی پیناوی، استامن چپکم، چون کز نام ناسی، وتی من مالویرانی بو مالرزم. دوم دلم هند سره پیچکه ژوندکم شش ساله افلیجو بدست ام دی او او دی وی پیدا کئ تا قجو دکې بن ارز تاریخو شدارم بکری ګرتو روژنه به هزار زحمت نانی وشکو چای لم دکانم پیاده کم لمیرولش به د سلاترم مناتوانم بت حوین موا لم قرباسی تو بو برادرکم وتم آی نه کئ نا مې کس دي کب زانی دولت پیوند به ایران وتی نا خاطر جنبه او برادره صد جارتوه و تاو صاف کره و تا تو، بو تاکولده کی تاوه و ايا رو بي عيب واي کرد کملم دا بو بله مفتی شاعر روشتو زوهاتوه زوری پینش و کابره ایكی دریجی رانکو چوخه پرپینه ایناكی اسطور لشاوی رشو سمیل تاشراوی تمن بناوده چو پیدا بو نسلام و نکلام هل و پیگوتم آي آي دو پشتیان دا گریه چنا ملا دلن هل گریه ای شیطان ای تا او میزر اسپیار ریشو داره چیه؟ تی ریم. گوتم بخواه او کابره شیطه دانشتو گوتي هجار نه او خود کسگی من تند جارم وقت تو بسر هد درست من کردو لی من روخایی و استاش نه دل سرد نیم مشتیل پیژدا پیگوتم نو میرزا رحمانی بانیو ب ما میرزا د ادواد وتی هسته بابروین ل رجال روانیم وتی رنگ زرد و جره برسید وتم نخیر بس سینیم وتی دیدرومکه زوره برسیه برد میا خراب خانه چیلی کردم پیگوتم شول شوی بوی چیان لسندی چون هوتیال که بگش خوان هوتیال دهات که پیوت تو چون دزبره کی چوار پنجای لباتی دت من حساب ده درکوت درکود کبچک آغا پولی نداو من حساب کرآو کاتر دفتر من رو من خالکی کناریو او بازیانی نسرابو پولی آبیان لمن نجراو زنیان کلایان لسرن رآو میرزا بردم دوکانی دل علی قتی وستا هم کره هم دریوشه هم صافی من پشیمانم کردو تا چون که خدمتی پرچوریشکی بونعکری تکه باید تاشا. دلاغ تماشایی سری کردم. گوتي ما میرزا اما که کولی هبوه پرچی خوتم گالتی خودم پاش پش سرو ریش چا کردن هینا میوه مال خوی. حوزه کی هبووتی ام قاچه پیست بشو بابوگانت نیا. چوین وطاقه کبو میوانو تریک لوطاقی نو مال بو. پشتاوک بشرمو گوتم تینو ما. وطی منوکری بابدنیم تینو تا به جهنم بچو لمال داوی اوبکا. وست بوم دی سان تین نه چاری کردم بچن بغل مالوی بکم که آمدندی خزانی ایوبو هنم همونی از میرزا او بو شرم نکمو خن به پارچه لخالکی مال بزنم شونو نی دامیو بجیشتم کب خوام ساعتیک بذیواره او بو همون سری ساعتیک بگر مهوری راد پریم خواهش بکم هستم بابش تویند کلکی ساعتم بسته و بابزماریک داو هستم لی بری بیانی میرزا ه تو دیتی و تو های شیطان هردم گد بیاد دقل ساعتکشون رابی وری زور سو بو مکرې مالو شرم میو ان تیم نه کټ ماله کولینه وای ميرزا پیو کې زور سیرم دی بدرو دا او حوالی لقامون بو لکاسبی دا شریک دوکان یکی تر ک خوای هیڅ کاری زور زنه کې خاون معلومات بو بس دن کتیب همو بابت کوا مطالعه کرد هر چی خوند بو دجی شیخ او درویش ملای نه زانو بو هیس ملائکیر لکیشه ده دقلی در نه دهبل زوریان با اندزانیو ببی با اوبزان بابی چی د انګود مرزا بوته بابی خوې نظر خدمت به داموانی کرد کردبو ل کورداتی دا سوتابو شویک چیروکی ژیانی خوې بو و تیم وتی ملمن لبانه بو من دالک بوم باب مردو قرض او قولی کی زوری ل سر بو بروتی او پیخواسی حاتمه شریف لیمانیو حمل بازارم کرد پاش چن سالی هوای چونه بعدم کرد لبر کروان چین پارما ود گل خو یانبر خدمت و تیان وتیان توپیه خاو سیو درو جره نابی، یواریک لکاتی جماعت شو ممز گو تک جو تکوش تازه رنگ زردم دزی تا قراق شاری بغدا دگل کاروان بو مو جاب شو له حوشی بارګای غوس وک ستن روتی بیجه خوتم و بو مغوس دزانی من عاقیدم پی نابی بو یکر بدست غوس زیاد له مون منی درکرد وتی تو دزبی ل کولان یک خوتم بیا نجولک یک خبری کردم که اگر شتک درم ل کرم, کرم. سرگردان د خلانو ل شوینه دم دجله چو مقاوه خانه چایان بو هنم نم خورده وتم پارم نی هر لیم ګرند انشم نیمرو شوهی چم نخواد کبره قواچی به زی پیند نانی دامی ورم ورن نگر شوهیشتان ل سر نیمکته بنوم بیانی دیسان نانیان د می نم وتم تاکر نکم و شان جیشان پیدا نکم هیس نا خون دباغچی بوده راد بردن قاوشی گوتی ام کورش برن چرمتان بو بشوا رگل یان کوتم زور زودر یان کردم گوتیان کار نزانی حت مو قاوخانه او شوشم ببرسیاتی رابوار بیانی او روژه ایک حت قاوخانه کوا با قاوشی گوت لاوکمان دوی لب دستی آشپس کرب کاو، امین بی قاوشی منی گوتی من گوتی بیبن هات ما دانشکده ای علوم عربی و درام دست آشپز. هر آشپز چای پیکوتیم و آرد و لوازم بیتین پالکی پیونامو برادرگر تندم. وقت آبوم میلم بیش که پیوتم برادرها تو بکار نیل قریا مووتم بر سیما بیه بهیزم بازیت پیمده هتا نانو چشته کی دامیوم میلم لپیواز پا کردن نه وقت آخری با قدرت کارم دکل دام مزرم. ورد ورده, ورده خم پوشه کرد زور کاری آشپزخانه کم بود است و خم گیم پلی کاری نیکارسته بازارن به من دست پردو دستیان پیل کاری ناو آشپزخانه بردمو حسام وا خان دوار کن کازنیان خان دارم درس کم کم وابلهات که به ما یک ل خوان کردنو بررسی ناو بنویس توانیم ل از من دا سرکو موب لپ ل تا دانش کده کم تا کرد. در دورانی خواندنم ده که عربیم باشد زنیو در سرد و سوده نو بازر شرزه بو بازرگانی کردی سلیمانی زورین خواند کرد بو عشنامو مالم بود کرین. دگل اوشه خوامشتم پیده ده نردنو بوینده فروشتم. تا او بو بو ما خواند پاره. تنیشته که بلم و گران بود که میوانانی سلیمانی بو کده بو بیان بم زیارتی شیخ و مشیخی بغ شنو حاجی و ما جیم و دوخه ده هل دوري دانشکده دا تو شهر کاولګ ده بوين دمغو الفاتحه دعا وکړه لجواب پرسرند دمغو اره اشپخانی هارون الرشید اوه او دستی القادر بالله فلانه چی خوی نعوزن بالله وو هروها هیندم او دستی عباسی اباسی پشاندان تا من دوه بونو دمیا له کردن ورز ده بو دی انګود میرزا باو جربس به بجری چتر لپاش تا عضوی دانشکده دا جوته کوشی زردی زور باش و کم کری کمک ریوچوموس لیمنی. داوطلب دوستی زوره. لبر دعوت کردن سری خون پیانه خوره. هر جمعی لمالک بوم. راجر لمیوانی حاجی کبوم ک کوشم یاد زیبو. حاجی هر داغی کوشکی ل مابو با انقاض باسی کوش دزانم کن. گویی میرزای جان صلح نازانم نا چه سکب بر جوته کوشی لمسگود لید آدزیم. استعش لبیرم ناچه. کوشو آبام لپیش دانه. وتم من زکبوم. ام آبایش سوییک و شکت چه موبانه قرض کنی با اوم دایو لشلو مانی ملم لباس زگانی نه هل لزمانی اسلامی و تابران وی شور شکانی شیخ محمود لهری که دعای آزادی کردستان کرده بچداریم کردوه تنانت هت مساقز بیارمتی حمراه شید خانو کدیتیم بر هال داییه بچمیشت اوایستش کپیر بومودارایم زوری لکزی دعو دلم با او خوش کبوانم یارمتی دامواین بدم باشوی سنیره ده حاتینه کوتای بش شانز می خند تیبی چشت مجوری حجرې مکرانی تا بش کیتر شوتان پر بیت